مبایسته تبل معصومی بحثمون در سرکه بود و تهیه اون به طور طبیعی الخلو حالا مباحثمون رسید به خلو تفاحه کیفه یسمعو خلو تفاحه چگونه به عمل میاد تهیه سرکه سیب به طور طبیعی یا قصل و توفه ها جاییهدن و توزار ومن حال اجضا خوب شسته میشه سیب برطرف میشه زدوده میشه، قسمت های یا چپکیش و یا انگل های گیاهیش این همه بردا داشته میشه پاکسازی میشه سیبای خراب قاطی سیبا نباشه. یا از سر او به مبر آب سیب گرفته میشه اگر دستگاه آب میوهگیری نبود حالا رنده میکنی حسابی هم رنده میکنی که له و بشه به اصطلاح خودمون با رنده ریز نه با رنده درشت. و کذالک قل بدتفاحه و قشرتها یا و قشرتها و قشرتها همچنین این سیب رو پوست میکنیم چرا؟ تو بعضی از سیب ها چسب میزنن و خود سمه چسب ایجاد تهوه و مسمومیت میکنه و زیر آب هم نمیره مگر اینکه پوست سیب رو بتراشیم پس از باب احتیاط عملیه خسته سیب میکنن یا ما آن ماء آن بعد قليهین به این مقدار سیب رنده شده یا آب سیب طبیعی آب گرم بعد از اینکه این آب جوشیده سپس گرم شده و از حرارت زیادی مقدار افتاده اینم هم آب سیب میکنیم یو وافو هلالعصیر سابق که آب تازه باشه ما اون داف اون یعنی آب گرم بعد قلیهی بعد از جوشاندن این آب به نقطه جوش برسه پنی دقیقه بجوشه با شعاله رو خاموش میکنیم از داق لب دوز بیفته بشه گرم ولی هنوز ولرم نشده هنوز نیمگرم نشده حالا این آب رو قطعی آب سیبا میکنیم نسبت به نسبت لتر مائن لکل کیلو غرام منعصیر تفاحن به نسبت هر لیتر آب گرم برای هر کیلو گرم آب سیب تازه هر کیلوگرم آب سیب به تازه یک لیتر آب گرم اضافه بش میکنم ثم یو سپس از باب کاتالیزور مجاورتی که سرعت به معادله ببخشه یعنی تو بحث ما سرعت به تخمیر رو ببخشه میم دو کار یک یو واف الیه 100 گرم سکر اضافه می‌گردد به سوی مخلوط آب و آب صد 100 گرم شکر حالا این شکر شیمیایی باشه بسیار بده قند شیمیایی باشه بسیار بده چرا چون این قند شکرای سفید کرم بدن رو کم می‌کنه پس اینجا شکر طبیعی مثل تبرزد شکر زرد خوزستان مثل سکر احمر شکر سرخ مازندران این دوتا تو روایات شیعه ماده. خب اگه بخوایم طبق روایات عمل کنیم پس باید شکر طبیعی باشه نه شیمیایی و 10 و من خمیرت الخبز و ده گرم خمیر نانم اضافه میکنیم باز این خمیر نانم طبیعی باشه نه که پودر جو شوریم بریم سریم نه تخمیرش طبیعی باشه به همین آرد سبوستار گندم یا جو آب اضافه می‌کنیم یه نیم ساعت یک ساعت ساعت می‌کنیم خود خمیر برمیرم حالا ده گرم از این خمیرم قاطیه آب و آب سیب و صد گرم شکر رو اینا میکنیم میشد این تا با هم چرا این کار کردیم؟ توضیح و ذالک و ذالکه للإصراع في تخم تخمر به خاطر اینکه سرعت ببخشیم به تخمیر طبیعی برای اینکه سرکه خودش یک مخمر طبیعی مخمر طبیعیه نظیر ماست شیرین طبیعی درست شد مخمرها مثل خمیر نام اینا همه به نفع بدن آدمیه یحفظ الظع مفتوحا في من 20 الى 30 درجه حفظ می‌گردد این ظرفی که این چارتا توشه در حالی که در ظرفو نمیبندیم گشوده است بدون سره در حرارت بین 20 30 درجه دمای اتاق یا انبار یا سالن نگهداری میکنیم و دور از نور شدید پروجیکتور یا لامپای نکمدادی یا نور خورشید و مانند او قرار میدیم. چرا؟ چون نور شدید چه طبیعی باشه چه آرزی باشه سرعت تخمیر رو کم میکنه و گاهی متوقف میکنه. پس در محیط تاریک یا خیلی کم نور نگهداری میکنید یوفول و آ او فی حرارت من 20 الی 30 درجه و بعیدا عن اشعه الشمس و و یعنی نورهای عارضی الکلام جنس نک مدالی پروژکتور لامپای 200 به بالا لانها توقف و عملیت تخمیر چون نور شدید چه آرزی چه طبیعی عملیات تخمیر رو متوقف میکنه ولا بأس اشکال نداره لازم نیست الا زرف خمرئی سفالی و مانند او باشه بلکه اگر شیشه ای هم باشه اشکال نداره ولا بأس به وضع المزید اشكال نداره به نهادن مخلوط ممزوج شده به وعاین زجاجی در ظرف شیشه مرحله ابتدایی و چ تا ده روزه یوترکل مزیجو لیتخمر عشرت ایام اتخمرال کحولی واگذاشته گذاشته می شود. این مخلوط ممزوج که از چهار چیز تشکیل شده بود: آب سیب تازه، آب گرم، 100 گرم شکر، 10 گرم هم خمیر نون این واگذاشته گذاشته میشه، رها میشه تا ده روز که قشنگ خمیر به عمل بیاد. اینه میگیم تخمر کحولی توضیح مطلب برای مرحله اوله. و ذالکه یعنی توضیح مرحله اولا التخمر کحولی به حفظی، به حفظه و نگهداری و محافظت از این مزیج از این مخلوط ممزود شده مکان در جای گرم این ماست به یه جای گرم اول نگهداری میکنی به عمل بیاد بعد برای اینکه که آب ماست ولو نشه آب زیاد نده از وزن ماست کایش بیدم بعد میذاریش توی اخچار درست مومنه خوب به حفظ المزیجه فی مکان دافعه در جای گرم و یو حر جالب که تو لغت دافعه دفعه میگه سردشه بعد پوشاک مناسب میبوشه بدنش گرم میشه درست مومن هم؟ ها اینجا آب که گرفتی سرد عادیه. بعد آب گرم قاتیش میکنه کم جون میگره بعد گفتم نگفتم زیلو کنه مثلا پلاسی چیزی رینا میدازی که نور نخوره آب خب گرم تر میشه مکانش گرم شه و ذالکه به حفظ مزیج فی مکانه دافن در جای بعد هر یه مدتی مومن تا سه روز سه روز اول قبل از پایان ده روز و یوحا و کل مزیج و ثلاث مرات یومی روزی سه بار این مخلوط ممزوج رو بده چون که در نداره به که سرریز نشه حالا با ملاقه چوبی هم بزن روزی سه بار مش هالحيصات يكبر، ويحول كل مزيد ثلاث مرات يوميا بملعقة خشبية، ثم يسكب الخليط في كيس شاش ويعصر لتصفيته، ثم يوضع في وعاء ذي فتحة واسعة. سپس ریخته و برگندانده میشه در کیسه نخی یا کتانی بعد این کیسه رو درشی میبندیم میچلیم نمیش قشن آب صاف میاد تیز زرف تو ظرفی که حبه هست و درش گشاده حال حتی اگر شیشه ای اون معنیم شو مومنان و در جای گرمم نگهداری میکنیم این مرحله و سپس ریخته و برگردانده میشه در کیسه نخی یا کتانی بعد فشرده میشه این کیسه در حالی که درش بسته است به خاطر تصفیه این خلیق این مخلوط ممزوج سپس نهاده میشه در ظرفی که در ظرف گشاده این خمراه شیشه یه درش گشاده مومنان المرحلت الثانیه یقفا فمل و به شاشیت و تشدو جیدن و یحفظو فی مكان دافعن لاكمال عملیت تخمرن مرحله دوم اینه که پوشانده میگردن دهانه زرف با پارچه نخی و کتانی به نوع محکم میبندیم و حفظش میکنیم باز تو جای گرم به خاطر تکمیل عملیات تخمیر طبیعی رشد باکتری مفید مدت و خل التفاح مدت زمان نگهداری این مایع برای بدست آوردن سرکی طبیعی سیب من 40 یومن الى 60 یومن از چهر روزه قبل از چهر روز حرامه از چهر روز ببرد شده سرکه سرکه عالی بشه سرکه کن تا دو ماه تا تکمیل شست روز اما این بنده خدا دکتر لبی بیضون میگه حسب الحراره گاهی ممکنه فصل پایی زمستان باشه گایی ممکنه فصل بهار و تابستون باشه لذا چه روز تا شهست روز متغیره بخاطر حرارت محیطی بحث مسائل جوی تو بحث هواشناسی. شناسی ثم یصف مزیج و یوفع في قواریر محکمت السد متربانات وقت مثلا و تحفظ في البراد لحین الاستعمال سپس بعد از اینکه 60 روز یا چه روز گذشت، حالا باز آب این خمره رو صاف کن، سرکه طبیعی مثلا انگور عسکری، سرکه طبیعی مثلا سیب که ب‌هسونه تصفیه بشه این مخلوط محلول، و نهاده گردد در ظروف شیشه‌ای که درش محکم میبندی تا فشار رطوبت، رطوبت محیط یا میاعانی که ناشی از سرد شدن درپوش پلاستیکی آب بخار میشه جایی درپوش پلاستیکی بعد چک میکنه تو سرکه بالای سرکه کپک میزنه بس اگرم تو زرفای شیشه دیختی ها با زیر این کپکش با قول عربا زیر این کپکش باید یه پارچه بذار بعد این درپوش رو برن قدیمی ها با کاؤچوم با چوبتنده این سر رو میبستن. که یه حالت چکه میاعان ناشی از بخار آب پیش نیاد هیچ وقت با قاشق یا دست خیست یا روغنی یا رو به گوجه ای تو سرکه نزن خود سرکه رو مثلا بریز تو زر یا قاشقی که تمیزه و خشکه اکثرا به خاطر چیزای دیگه مومن ها کپک میزنن. اگر نه کپک نمیزن فاصل نمیشه هرچی هم بمونه نزیر اصل طبیع فاصل نمیشه هرچی بمونه حالا بعد از اینکه سرکه طبیعی تهیه شد تو زرفای شیشیه در محکم که با دربوش کاوتشو مثلا یا اون یکی دیگه چوب بنده یا پارچه نخی یا کتانی که محکم بستیه حالا جای سرد نگه داری کن. تو نجف و کربلا و اندیمشک و دسفول و بخشای از عربستان اصلا تو سرداب سند که از خود کف زمین پله پله میکنن میره به عمق سی پله بعد یه اتاق دو درسه یا سه در و از وسط اتاق یک دونه مثل چای قنات بکنن اوده تا کف حیات یا زمین بعد مفکره گذاشتن یه پنجره های اینجور با میلگه. آه. بعد میتونیم معومات این صله ها یا زنبیهایی که علیف خورما درست شده مامن ها شیش های سرکت تیم بذارییم از این مفکره آویزون میکن بره تو ستتیمت پایین. اینا یخچال طبیعی جایی که یخچال نه جایی هم که یخچال دارن مؤمنا میذارن تاخچه پایین یخچال از همه جای یخچال سرتره چون جریان سرد هوایی پایین به اصطلاح خودمون رو جامیویه‌ای یخچال بچین رو جامیویه‌ای یخچال بشین نکنه تو در یخچال بذاری لنگر بندازه رگلاجش به هم بخور رو جامیویه‌ای یخچال بچین اینا مؤمنا تا اینجا حالا دو تا روایت رو یادداشت کنید باز دو کلمه از خارجی و داخلی بگم امام رضا علیه السلام فرمودند هر کسی که دوست داره تورم لوزه های جانبی نگیره و تورم لوزه سوم نگیره و یا اینکه اگر داره درمان بشه و همچنین افتادگی دو گوش حلق و لحات نگیره و اگر داره درمان بشه همیشه بعد از خوردن شیرینی سرکه طبیعی قرغره کنه بریز بیرون فهموش امام رضا یاد داشت بفهمیم؟ تبور رضا علیه السلام تصحیح حکیم هست تصحیحات های مختلف هست ممنون ترجمه های مختلف هم هست از جمله ترجمه امیر صادقی صفحه 271 من اراد ان لا تسقط و ولهاته فلا یکل حلو حتی یتقار قره بعده خلون چه قشنگم حد ما امینا او سه هم آقا فعامده اگر دوست دارید دندونات باشین طبیعی یا غیر طبیعی خراب نشه قبلش یه نون خوش بجو بخور بعد بخور قربونه رضا و رعوفه علاوه بر آخرت خوب که به ما یاد میده میگه دنیا هم خوب باشه روایت بعدی علیکم بلعبیوین الخبز و رقبت اینا تو کتاب نیستن به کتاب اضافه کردن علیکم بالابین الخبز و رقته بعضی نسخه‌ها داره از دو قطه یعنی ملح بر شما با دو شیء سفید تو منزلتون باشه یکی نمک طعام به داشتین چه پودر سنگ باشه مؤمنان چه نمک دریا باشه سالم بهداشتی. داشتید دوم چیه آرد نان آرده نان و منول با سبوس باشه بهتر و اد منول خل و زیت فی منازل کم و مداومت داشته باشید در فراوری و تهیه سرکه طبیعی در منزل سرکه طبیعی انگور عسکری سرکه سیب طبیعی و زیت روغن زیتون خالص خیلی فرابری شده تمیز این دوتا تو هاتون باشه که خیلی فواهد داره در کتاب های نسخ خطیمون هم هست از جمله الاصول ستت عشر ملف یادین المحمودی چاپ دار الحدیث صفحه 136 مومن این روایت پنشیش خطه حتما بخونید بعد مومن این تیکش که مباعثه خودمون بحث سرکش ما این تیکش گزینش کرده ابن مومنه. هم مقتوعت الابل هم مقتوعت الاخر روایت وسط روایت اووردن اشکال علم رجال نگیریم خواستم جا کم هم تو کتاب ولی همین روایت حتما بخونیم کتاب سح... این روایت صحیح و موسقه روایت بعدی پس اصول ستت عشر صفحه سد و روایت بعدی اطعم ماشاءالله شاء الله همتون ازدواج کردین نسلتون امزاری طیبهس الحمدلله رب العالمین خدا تمام بینندگان و شنوندگان عزیز و نسلشون رو سروری طیبه فرابره در خدمت مولا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشری حالا که شوبرای عاقل پدرای عاقل سن بچه دارن فک و فامیل دارن حالا وظیفه اطعم عیالک اطعم عیالک خل و زیت و حج بهم کل سنتم خیلی جالبه میگه زن بچه تو سرکه طبیعی تو جیره قضاییشون قرار بده تو سرکه قضایی خانواده همچنین روغن زیتون بعدم وقتی که وضعیت خوبه ها تنهایی سفر نرو حتی اگه سفر مستحبی و یا واجب باشه دست زن و بچه تن مکه واجب یا عمره مستحبی امره مفرده برو بعد همون آدم تک خور باشه بعد میگه عبدالبت نیم آدم تک بخوابه یک جا اینم بده میگه عروز جنون و سفاحت میشه نامه همه رو واید نهگه مثلا یه محیطی و توتاقی بخوابی که خانومت هست حالا خانومت نیست نبرای بری تنها بخ ات اتاق بخوابی که بچه‌ حالا هر کسی وقت خوابش جداست متکاش رو انداز زیر اندازش جداست چندها تا بخواب آدم منزل رستوران نیست هتل نیست که یکی مثلا تو سالن دراز کشید خوابیده یکی تین اتاق دراز کشیده یکی تو اتاق دراز کشیده چه عدا طور قلبی شقی کور است غذا جدا جدا میخورن این همه آثار سوء روانی داره مسافرت با هم به قضا با هم بخواید یک جایی مشخص بخوابین سالونتون بذار همه بخواد. متکا رو انداز زین جداست با فاصله هم خوابیدم بچه که ده سال تمام شد میگه جاهاشو جدا منداز تو روایاتشیه نه اینکه که پرت و پلا بخواید که ذریعی اختلالات روانی بالا میره برد این اشتباه قلبی رو نباید ما تکرار کنیم. تصلا فهمیدید؟ بله. تو مسائل خاصی است. تصلا فهمیدید؟ سلام علیه خوستی خاص. کجا باید پدر و مادر به درستی رعایت کنم؟ که بچه نشنه، صداشون رو، بچه نبینه عملیات آکروباسیشون. زیرا که بچه مبتلای به زنا میشه. اینا تو روایات بیان شده. اما در غیر این مورد خاص و مواردی که لباسشون عوض میکنن که بدن پیدا میشه در غیر این دو مورد خاص ما تفرقه و پراکن بگی ندارین این هم مسافرات گفتن برای اینکه که بعضی شوهر یا مردا الکی خوشی زیر دلشون می زنن یک کم جیبشون پرپور میشه. شه می با دوست و رفاقایی برای من بیره خیلی زنبچه گناه دارن همون تو خونه زندان که نیست خونه از صبح تا تو خونه بعد که میار قلداری کنی یا این نقنق بینا پس کلهی بیان دریبری اون نکته سنجیر بیجا از خانم که زندگی نشد این شد زنده محل شکنجه نه زندگی صحیح باید ارتباطات عمومی با زن بچه صحیح باشه بلی الله پس اینجا خواستم فهمویه چه معصوم چه قشنگاه در آن باید دنیا و آخرت برمی الخل و زیت و حج به هم کل دستن آدرسش کافی شیخ کلینی چپ اسلامیه تیران جلد چار صفحه 256 حدیث 16 تو کتاب های خارجی هم تو بحث سیب مطالبی دارم مثلا کتاب های سری کتاب های داروخونه طبیعت نمیستنده مارگوت هلمیس مترجم نیکو خوگر معجزه سرکی سیب مثلا یکی از فواید سرکی سیب رقیق کردن خونه یادتونه گفتم آب آبجوش بله خون رو رقیق می‌کنه و آبجوش بله هم ضد تسلوب شرایین خب میتونی یک قاشق پلو خوری سرکه طبیعی سیب رو قاطی آب کنی این میشه به تضاف، به توانده و وقیق کننده میشه یکی دیگه از فوایدش چیه پیشگیری میکنه و جلوگیری میکنه از پوکی استخوان یا بیماری استعبارست که این هم یک بیماری شایع هم تو سطح جهانه هم تو کشوره هم. تو جیره غذایی باشه استحکام استخوان میشه که تو روایات شیه هم ده یکی دیگه هم ایجاد شادابی پوست و ایجاد حافظه قوی و استمرار بخشیدن به حافظه نرمال میکنه یکی دیگهش با امینا زد سموم رودس. زد سموم رودس. زد سموم مختلفه خودسیب یک زد سمه یک تریاق طبیعیه که یه فوالدشی میگه میگه خونسازه زد تبه بعد میگه زد سمه زد سحره حالا زد سمه سیب درختی شیرین و سیر زد سمه عجوه یه قسم خورما زده سمه زده سحرم هست سرکه طبیعی هم چیه همجون این هم زده سمه روده است. مخصوصا سرکه سیب که بحث ما است. یکی دیگه مؤمن کسانی که کشیدگی ازولاد دارن و درد ناشی از کشیدگی ازولاد دارن جمع کننده ازولاد و حالت الاستیکه عضلات برگرده سرکه طبیعی سیب رو تو جیره غذایی تو سالادش بریزه تو سوپش بریزه تو این آب بریزه این قاشا پلوخوری تو 24 ساعت کافیه زیاده روی در خوردن مهم نکنه همچنین سرکه طبیعی در درمان مخصوصا سرکه سیب هم یکیش در درمان سر درد در درمان جلودع یا تونه گفتم واسه آنژین گلو یا تورم لوزه های جانبی یا لوزه سوم یا افونت لوزا ها مخصوصا قبل از خواب مخلوط محلول آب سرکه قرقره کن تو دهن بگردون بریز بیرون هم افونت ها رو می میریزی بیرون معامل ها و هم اینکه که تورم میخوابه چه لوزه جانبی چه لوزه استهبام چه تورم لست ها همه اینا میخوابه هم همچنین تو بحث های سرما خوردگی و گریب و آبریزش های بینی و نزله ها تجمع مخاط اضافی پشت حلق نزله اینا هم چی مومن ها؟ کردن سرکه سیب و یا سرک انگول خوب عمو جان تو بحث بیماری های مفصلی خشکی مفصل یا کشش تاندون یا کشش بیش از حد منیکس در همه این موارد یک جمع کننده طبیعه و برگشت پذیر شدنه حالت الاستیک ازولاز کیسایی که اختلالات گوارشی دارن و هضمشون یک کم مشکله از باب اینکه که تخمه و پوده میکنه کمک به هضم غذا میکنه همچون خود سیب اینجا مخمرش هم که سرکه طبیعه کمک میکنه ولی به شرطی که تنها نخوره، مخلوط با سالاد یا توی سوپ یا به شما ارز تو لیوان آبت میریزی می و تنها نخوری که سرسوزه معده بگیری حالا کاربوردهای سرکه سیب مثلا اگر کسی مستعد بیماریه اگر کسی مستعد بیماریه مثلا علائم استخوندرد علائم مفصلدرد علائم سرماخوردگی، علائم آنفولانزا، آمفلانزا، سارس که آمفلانزاای پیش رفته، علاوه آشکار شده ولی هنوز خودشو درگیر نکرده، مبتلا هنوز نشده. تصور خب، اینجا بخواید تقویت قدرت دفاعی بدن کنه. قبل از اینکه ویروس یا باکتری ما را اپا در بیاره یا ما رو مبتلا به بیماری کنه. تقویت قدرت دفاعی و رفع رسوبگذاری رسوبگذاری تو رگ که تصلاب شرایین و سختی رگ و نشری خون بشه رسوبگذاری توی صفرا رسوبگذاری تو کلیه رسوبگذاری تو مسانه برای رفع رسوبگذاری و تقویت سیستم دفاعی بدم حالا نوشیدنی مناسب دو قاشق چای خونی. سرکه طبیعی سیب رو توی یه لیوان آب میریزی بعد صبحا یه نعی میذاریت این لیوانه یواش یواش میخوری این که خالدی میگن جرعه جرعه بخور قلته اونجور که امام صادق میفهمید درست مصن مصن لا عبدا عبدا نوشیدنی ها رو باید بمیکی بمیکی بخوری نه قرد قرد و جرعه جرعه مصن مصن لا عبن عبن وصلت آب آبجوش بلرمه شربت شیر مباسه خود دو قاشق چای خوریم مثلا یک قاشق مرباخوری سرپر تو یک لیوان آب صبح ناشتا یواش یواش نه با عجله یعنی مثلا این لیوان تو 5 دقیقه تا 10 دقیقه طول بده همج اخبار صد گوش میکنید ها کتاب مطالعه میکنی و مانند اینو قرآن میخونی بین فواصل قرآن بینید یواش یواش بخونی یه صفحه قرآن خوندی حالا یه میک میزن یه کم محلول افسر کن یه صفحه دیگه قرآن مخونی نسا فهمونیدی؟ خب مطلب بعدی کسانی که از نارهتی های خستگی چشمی خستگی چشمی رنج میبره حالا یه صفحه نخونده های چشمش خست نمیشه قیوب انکساری چشم نداره یعنی فاصله کانونی پشت کورو چشم تغییر نکرد کسایی که خستگی چشم ها دارن کسایی که حساسیت به نور دارن استگماتیک دارن یا دا عینکشون اینجوره یا گفتیم مومن حلیله سیاه درمان میکنه و پیشگیری یه دارو دیگه چیه؟ سرکه یه سیبه هم پیشگیری و درمان خستگی چشم هم پیشگیری و درمان حساسیت چشم به نور شدید داره. استگماتیک داره حالا اینجا دو قاشق چای خوری سرکه رو قاطیه نوشیدنیت میکنه که آب یا آبجوشه بلرمه خارجی ها میان با فاسد دفعه افسد میکنن میگن این خستگی زود رس چشمی و یا حساسیت چشمت به نور شدید خب این دوتا افصده میان با فاسد در فاسده چه من میگم میگم دو قاشق چای خوریم سرکه طبیعی رو قاطی یه لیوان آب میکنیم ولی همراه هم یه قاشق عسل بزن یه قاشق مرحب خوریم هم مخلوط کن یا از روایات شیه که حاشیه زده بودم براتون خوندم که چند چیز عسل رو فاسد میکنه یکیش سرکست یکیش گرد و خاکه یکیش نمکه ها. پس این خارجی ها میخوان با فاسر دفعه افزد کنم اونها لازم میسه همونجه کار ها. ما اونجا حلیله سیاه میذاریم جدا میخواریم چند تا خوبی هم داره نور چشمی زیاد میشه درمان آستگماتیک میشه ملین مزاجش از سن زیر پنجاه سال رنگدانه های موفولیکول های موش بر میگد تاکه لازم میسه رنگ شی این هم مؤمنا حاشیه داریم به این کنار حرف خالدیم. اگر کسی ناراحتی درد مفاصل داره ناشی از خشکی مفصل. خوب مایه مفصلی شت آمین میکنیم با ویتامین B1. حالا یک کام میکنم مؤمنا با 15 یا 20 عدد قرص شیمیایی ویتامین B1 300 میلیگرمی یعنی یکی باخ. بحث خوراکی هم مغز بادام مشیرین چارده عدد به این روز میخوره خام تفتاده شور نباشه شبم قبل خواب یه عدد لیموشیرین میخوره تو بحث خودمون که سرکه طبیعیه میگیم نوشیدنی محلول آب سرکه بخور اما نه زیاده کم همون طوضیح که قبل داریم دو قاشق چای خوری یا یه قاشق مرب بخوری سرکه سیبرون میریزی توی یه لیوان آب هم بزن بخور. دردای مفاصل ناشی از کمبود مایع مفصلی یا ناشی از تجمع کلاف پروتئینی که پزشکی جدید در درمان تجمع کلاف پروتئینی تو مفصل دارو ندارد میگه جراحی میان از این قسمت مفصل میش تا این قسمت و اون کلاف سردرگم پروتئینی تو مفصلو تو مایع مفصلی قوطه که پای شخص تان باز نمیشه همش تاست یعنی وقتی هم میخوابه پاش نمیتونه درست کنه وقتی هم راه میره یک کم پاش جنب زنگولنگول راه میره همیش تو پیش تا 24 صدا دائما درد داره اینجا زانوش قفلش به خاطر تجمع شبکه پروتئینیه بیشتر در چه افرادی اینجوری میشه تجمع شبکه پروتئینی در افرادی که پرخورند و کم تحرک یا اضافه وزن چل بی بیوم 20 کیلو به بالا دارن و کم تحرک اینجا هر کیلو اضافه وزن 10 کیلو فشار اضافی به مفصل میاره مفصل های زانوش ملتهب میشه آرتریت روماتوئید التعاب مفصل میشه به خاطر اضافه وزن بیش از حدش یا پرخوری بیش از حدش درد مفصل میگیره و پاش قشن صاف نمیشه پاش کج میمونه حتی دراز میکشه پاشو نمی صاف کنه همیشه باید زیر این زانوش که یا دو تا متکا بزن داروش تو بحث آب درمانی چه روز آب درمانی پروتئین در مفصل آب بگیره آخرین مراکز تحقیقاتی در آمریکا هم همین رو میگه تو مشهد هم بعضی‌ها که گفته شده مؤمنان خوب شدن وا اینکه پیشه فوق تخصص و متخصص مفصل تو اینا رو دو سال بنده خدا داروهای مختلف چنین و چنین آخرش که عکس برداگیر بودن بودن این تجمع پروتئین تو مفصل جوایی کردن حاجی همون بنده خدا که هم تیپ ما هم. چه روز آب درمانی کرد خود آمریکایی تو مراکز تحقیقات آمریکایی این قسمت آب درمانی میده بعد به توسط جوایی کارن تو کشور ما سود مشکافه یعنی یه پزشکی خشن لازم است که بلافاصله شکم صبر کنه یا پاره بهش میتونی تغییر رژیم غذایی بدیم مومنات چه غذایی بخوره چه غذایی نخوره و با آب درمانی که شرعی باشه آب درمانی که شرعی باشه این مریض رو به راه بشه حالا مبایسه خدا این سرکه سیب به صورت طبیعی کمک به درمان طبیعی ما. یکی دیگه مومنان کسانی که ریزش موشون زیاده یکیشه تو ماه مبارک رمضان گفتم برای بینندگان و شنوندگان عزیز و او چی بود؟ گرفتن روزه شرعی کسایی که از زن و مرد آلوپسی مردانه دارن تاسیه جلوی سر دارن اگر پیازای موشون سالم باشه اببین نرفته باشه اگر روزه شرعی بگیرن آموها در میان. ما از خود پروفسور سوفرین این دانشمند خارجی مومنان داریم. از خارجی دیگه عکسای های مختلف داریم. تصافی فهمونی آبا؟ آه. که رشد موشون برگشته و مو در اومده. دازم نیست که ما بیاییم جرائی کنیم تو جرائی های مو که بیاییم موهای پشت سر رو با پیاز مو در بیاریم و بیایم جلوی سر بکاریم. اینه که آنم متداوله. روزه شرعی گرفتن یعنی سحری بخوره، افتاری بخوره، متعارب، سنجیده با همون توضیحی که مارمزون دادم. این یک درمان طبیعی که امساک شرعیه. دومین درمان طبیعی چیه؟ استفاده از سرکه طبیعی سیب. موهای ریخته شده در میاد. کسانی که قدرت چربی موشون فعاله. هر روز هم میره هموم همیشه مواش چربه با اینکه از برس و شانه نکتیزم استفاده نمیکنه یعنی تحریک کازه پوست سر رو نمیده که ترشوه اضافی چربی بشه بروست موامنا؟ خب یه یعنی هم کسایی که ریزش مو دارن با عنوان فصلی یا ریزش مو دارن با عنوان هورمونی که مثلا در خانوما اگر هورمون زنانه استروژن و کم بشه و هورمون مردانه تستسترون بالا بره اینا دوچاره آلوبسی مردانه میشن تاثیر دلوسمی با اینکه خانم دختر تو هر سنی که بخواد باشه همچنین این دوچاره هیپرپلازی میشن صداشون خشن میشه نه تراشیده ای نه خواشیده تعجب میکنه چرا این صداش اینجوریه از مرد عادی هم صداش بدتر میشه. اکسش باز تو مرد و پسران. تو مرد و پسران اگر هورمون مردانه تستوسترونش کم بشه. هورمون زنانه و پروژستان بره بالا. یه وقتا امینی ریش سیبیلو امریک تنوک شد. یه باز سن آدم میره بالا. بالای 50 سال پرپشتی مو فیزیولوژی هم. تو چرخه حیات انسانی کم میشه. تصافه همونیم؟ یه بار دیگه نه به خاطر کاهش شدید هرمون مردانه تستوسترون در مردان و پسرانه اینا هم همینطور میشن. حالا در هر دو مورد همین دو کلمه خواستم توضیح بدم در ریزش مو چه فصلی باشه و چه هرمونی باشه یکی از داروهای طبیعیشی استفاده از نوشیدنی سرکه سیب گفتیم دوقاشو راشات چای خوری یا یه قاش بخوری سرکه طبیعی تو یه لیوان آب بریز هم بزن بخور کسانی که ناراحتی اگزمای پوستی دارند و خارش سر و خارش مو دارن. یه بار یادتونه گفتیم زماد مرد و صدر یا زماد صدر و حنا حالا یک بار دیگه مومن نه میتونیم خوراکی استفاده کنیم یا به صورت اسباغ یا استباغ طلب پماد طلب زماد با سرکه طبیعی که خیلی فایده داره یکیش هم چیه؟ پیشگیری و درمان اگزمای پوستی و خالش مو مالیدن سرکه رقیق شده سیب مثلا یه قاشق مراب بخوری سرکه سیب در یه لیوان آب و این محلول رو به کل بدن میمالی برای اگزمای پوستی ها و خادش پوست سر خب این اوستی چی این کار کردی؟ تا تعادل بشه و جبران بشه فقر مواد معدنی. تا تعادل بیاد و جبران بشه کمبود مواد معدنی؟ اگر کسی گرفتگی صدا دارد فونت لوزه نداره ندول ندول تارهای صوتی نداره نوندال وابلام ندول تارهای صوتی نداره یعنی تارهای صوتیش حالت به شما از کنم که حالتهای تابل نداره تابلهای روی تارهای صوتی تو تخصصی گوش حلق و بینی. و فوق تخصاصی حنجره میگن ندول خب اینا هم نداره اما صداش همش گرفته میخواد الفاظ بگیه همه رو با تای گلو میگه بزا زود خسته میشه داروی طبیعی چیه؟ آنم برای درمان گرفتگی صدا قرقره کردن یک قاشق چای خوری سرکه سیب در یک لیوان آب هر ساعت یک بار قرقره کنه بریزه بیرون یک قلوبت هم بخوره اینجا چون یک زده باکتری طبیعی استفاده کرده اون باکتری های مزر اطراف حلق آخر زبان پشت زبانک اطراف لوزا و روی لوزا و اطراف روی لوزه سیرون همجور بیانه تا قسمت انتهای حلق و ابتدای حنجره و نای همه باکتری های مزر رو عبنه چرا؟ چون سرکه طبیعی سیب؟ همچون بقیه سرکه ها این قوی تر، یک زده باکتریه اگر کسی طبیعی داره یا زکام داره یعنی سرماخوردگی توان با آبریزش بینی یا زکام داره در اثر حساسیتش به یک گیاهی دیدی به از ایران حساسیت فصلی دارم مثلا هاگ گل ها ها در ماه باها این هم دیگه عطسه پشت سر هم شروع میشه آبریزش عشکیش آبریزش چشمش اشک چشمی زیاد میشه آبریزش بینیش هم زیاد میشه حالا با امنا اینجا چکارم میکنیم دو قاشق چای خوریم سرکه طبیعی سیبر رو میریزیم تو لیوان یه قاشق مربخوری هم اصل توش هم میزنیم با که فاسد شد ها با فاسد دفعه افسد کن شد مخلوت محلول اصل و آب و سرکه طبیعی سین. اینجا هم جبران کمبود نمک های بدن میشه نمک های معدنی بدن هم قدرت دفاعی بدن سیستم دفاعی بدن بالا میره هم تقویت سلامتی میشه و استمرار سلامتی تو بحث زکام، تو بحث سرم خوردگی از چیزهای طبیعی هم میتونی استفاده کنیم. مثل چی؟ اگر کسی دوست دارد هیچ وقت تب نکنه و تبش طولانی و شدید نشه. نه طولانی بشه نه شدید. و همچنین تشنج پیدا نکنه. نه آرزی نه تشدید بشه تشنج سرعی جنتیکی. اینجا همیشه تو جیره قضایی صبحا عسل رقیق شده باشه و شبها بعد از شام قبل از خواب آب سیب تازه تو آب سیب تازهش میتونه چی بزنه همون جور؟ اصل بزنه بین روز این سرکه سیب رقیق شده با سالادش میخوره با سوپش میخوره یا محلول در آب میخوره تمام شد. این خارج از کتاب هاشی بزنه اگر کسی سرفه هایی داره که ناشی از آلرژیه یا سرفه های تحریک پذیره حالت های قلقلکی یا سوزش در قسمت گلو هی تون تون میگیره با کوچکتر حفظ, حفظ زدن یا هی سرفهش میگیره یا کسی که سرفه ناشی از حساسیت به پروتئین لبنیات که اگر شب یه پیاله ماست بخوره یا یه, یه لیوان دوغا تو چند روزه این سرفه های خوشکه مکرر میکنه درست شد نه؟ ها؟ تحریک صرفه گرفتگی و التهاب گلو میتونه از یک زده افونی کننده و زده باکتری و زده تحریک استفاده کنه و اون چی بود؟ محلول آب سرکه سین میتونه کمک کنه به لطافت و نرمی سینه و گلو مثل چی؟ مثل آب شلقن مثل آب سیب مثل عسل رقیق شده حالا چارمیش چیه؟ مبارسه ما مثل سرکه طبیعی سیب که رقیقش کنی در یه لیوان آب آشان میدن یه ساله کسانی که زخمای بدنشون به بهبودی پیدا میکنه کسی که زخم بدنش به بهبودی پیدا میکنه گاهی مشکل پلاکت خون یا عوامل انعقادی خون داره برای ازدیاد پلاکت خونش تخم یانجه و سیاه دانه به نسبت مساوی قاطی میکنیم مثلا یک قاشق چای خوری تخم یانجه به اضافه یک قاشق چای خوری سیاه دونه این دوتاره قاطی میکنیم تو چو با هم به جور بخوره تو 24 چه سعد یک بار کم کم پلاکت های خون عوامل انعقادی خونش بالا میره یه بار نه این افت پلاکت خون عارضی نیست جنتیکی بوده مثلا رسته بیماری های هموفیلی بوده که اگر جایی از بدنشون خون بیاد هم همچون زیاد خون میاد دیر خوب میشه یا اگر مثلا اگر جایی از بدنشون خون بیاد زیاد خون میاد و یا دیر خوب میشه و یا این که نه بلعرز به خاطر بیماری های خون بلعرز افته پلاکت خون پیدا کرده اینجا سیاه دونه با اصل که خور مؤمن و ولی یک فاصله دوازده ساعته حالا میان چیکار میکنیم؟ نوشیدنی در هر وعده غذایی در بین قضاش محلول آب سرکی سیب یعنی یک قاشم مربع بخوری سیب سیبو میزه توی یک لیوان این وسط قضاش میخوره وسط صبحانه اگر نون خورده مثلا بین نون خوردنش میخورد. خورد وسط نهار مواد نشاسهی یا برنج یا مکارانی خورد وسط شام بین غذا خورده قریبه به ماست و شیر و اینا نباشه ما باید فاصله باشه پهندی دقیقه یا بیست دقیقه پس فاصله باشه چی؟ با اون چیزایی که مضره. پس بین قضاها چیکار کن کنه؟ گربه چه و ست تا محلول آب سرکه سیب با آب اینجا کندی بهبود زخم‌هاش خوب میشه اگر کسی درد معده داره و درد معده‌ش هم در نتیجه مصرف مواد غذایی فاسده یادتونه گفتم ضد سم چند چیز یکیش عسل رقیق شده بود یکیش عجوه بود یک قسم خورماست یکی دیگهش سیب یا آب سیب تازه رسیده شیرین یکی دیگهش اش مباحث سرکه طبیعی سیب کسی که درد معده در نتیجه مصرف مواد غذایی فاسد داره نوشیدنی هر 15 دقیقه یک تا دو قاشق خوری محلول آب سرکه می‌خوره جافه و رفع کننده مسمومیت تاثیر ضد باکتری داره آخرین مطلب بقیه مطالب ان شاءالله شنبه آخرین مطلب کسایی که خون دماغ میشن در خواب یا بیداری یه بار ویتامین بی یک یه بار ویتامین کاشون کمه این دوتا ویتامین بدن رو تأمین یه بار دیگه موامنا عوامل انعقادیش کمه قبلا توضیح دادم درمان یه بار دیگه مویرگ های بینیش خشکه و شکننده اینجا باید صعود سمسن باید استنشاق کنه روغنه کنجد رو تو بینی ولو یک بار نرم میشه پوست داخل بینی دیگه ظریف شکست رگا و پوست داخل بینی بالا نمیره یک بار دیگه مومنان نه به خاطر اینکه محیط گرمه و خونریزی از دماغ داره گرم و خشک مثل کجا همون؟ مثل که ایران مثل نجف و کربلا کرمو خوش چله تابستون رفتیم. اونجا سبزی تره کراست یا سبزی ریحان به چلونش سبزی تره یا سبزی ریحان به چلونش با سه چکون یکی دو سه یکی دو سه قطر تو بینی بچکون قسمت بین استخوان بینی و غزروف رو بگیر یک دقیقه تا سه دقیقه همجوری هم بگیره میشه. میسه حالا تو بحثه تره باز بگی سود بشینه مریض پشت حلقش نره این آب تره اگر مناطق شرجیه یعنی گرم و مرتوب یا خیزه سرد و مرتوب مثلا تو اعماق جنگل های سیبریه قطب شمال قطب جنوبه رفته قله ایبرست قله دمامن سرد و مرطوبه. تصالت هم بوده؟ اونجا مؤمن ها جوشانده سپند بخور سپند اصاره سپند اگر بخور سپند باشه آبریزش بینید قط میشه بعد با قطع چکن یکی دو قطعه یکی دو قطع تو بینید میچه کنی شدید ناشی از این مناطق حاروه مرطوبه یا سرد مرتوب چی میشه همونجور؟ اب بمیره خیلی قویه حالا مباحث خودم کسایی که خون دماغ دارن ها اما ناشی از فشار خون بالا یا چربی خون بالا اینجا مؤمنا برای درمان خون دماغشون یا کسایی که پلاکت خونشون خیلی پایین اینها چی امجون برای درمان خون دماغشون نوشیدنیه یک لیوان محلول آب سرکه در هر وعده غذایی یعنی یه قشم و بخوری سرکه سیب سیبرو مخلو توی لیوان آب و یه سالم میکنی وسط هر قضا یک لیوان کلن 24 میشه هش ساعت میشه سه لیوان فاصله شو ساعت 8 ساعت 8 ساعت بگذار این منعقد کننده خونه تصاف اللهم صلی عالم محمد محمد